رادیو قبرس تقدیم می کنند. درمان شپن هاور با صدای نوشین ستاری بیشتر انسان ها هنگامی که در پایان عمر به پس پشت می نگرند در میابند چقدر ناپایدار زیستند وقتی می‌بینند آنچه آن از دستشان برود بیان که قدرش را بدانند یا لذتش را ببرند همان زندگیشان بوده شگفت زده خواهند شد و چون انسانی فریب خورده از امید رقصان به سوی بازوان مرگ می رود فصل سیستم دردسر بچه گربه داشتن اینه که اون بالاخره گربه میشه دردسر بچه گربه داشتن اینه که اون بالاخره گربه میشه جولیوس تکان محکمی به سرش داد تا این شعر مزاحم رو از ذهن براند و در بستر نشست و چشمانش رو گشود ساعت شش صبح بود یک هفته بعد روز جلسه بعدی گروه بود و آن قطعه شعر شاعر آمریکایی که در ذهنش تاب میخورد موزیک متن شب دیگری بود که به خوابی ناکافی و نچندان رضایت بخش گذشته بود گرچه همه قبول دارند که زندگی یعنی فقدان پشت فقدان کمتر کسی میداند یکی از بدترین فقدان‌هایی که در دهه های پایانی عمر انتظار من را میکشد فقدان یک خواب خوب شبانه است جولیوس این درس را خوب یاد گرفته بود. یک شب معمولی عبارت بود از چرت‌های سبک که تقریبا هیچ وقت به قلم را به ژرف و آرام امواج دلتا وارد نمیشد خوابی که چنان به وسیله بیداری های مکرر از هم می گسیق که اغلب از به بستر رفتن میترسید مثل بیشتر بیخوابها او هم صبحها در حالی برمیخواست که حس میکرد خیلی کمتر از میزان واقعی خوابیده یا حتی همه شب را بیدار بوده است. گاهی فقط در صورتی مطمئن میشد خوابش برده که افکار شبانه اش را به دقت مرور میکرد و متوجه می شد هرگز نمیتوانسته در عالم بیداری به چنین چیزهای بی ربط و عجیب و غریبی بیندیشد آن هم در مدتی به این درازی ولی امروز صبح اصلا نمیدانست چقدر خوابیده و کاملا گیج بود ترجیحاً بچه گربه گربه باید از قلمرو رویا روی آمده باشد ولی تکلیف سایر افکار شبانه اش معلوم نبود نا وضوح و هدفمندی هوشیاری تمام و را داشت و نه تنون پرپیچ و خم افکار متعلق به رویا را. جولیوس از همان دستوری پیروی کرد که برای تسهیل به یاد تخیلات شبانه، تصاویر پیش از خواب و رویا به بیمارانش میداد. در بستر نشست و با چشمان بسته آن قطعه شعر را مرور کرد. شعر خطاب به کسانی است که بچه گربه ها را دوست دارند ولی به بالغ شدن و گربه شدنشان علاقه ای ندارند. ولی این به او چه ربطی داشت؟ او بچه گربه ها و گربه ها را به یک اندازه دوست داشت. آشق دو گربه بالغی بود که در مغازه پدرش بودند. همینطور آشق بچه های آنها و بچه های بچه هایشان و نمی توانست بفهمد چرا این شعر آن هم به شکل چنین مزاحم در ذهنش جا خوش کرده است؟ دوباره که فکر کرد به این نتیجه رسید که شاید شعر یادآوری خشه نیست از اینکه چطور همه ای عمر به باوری غلط چسبیده بوده اینکه همه‌ی ای آنچه به جولیوس هرتسفلد مربوط است کامیابی، مقام، افتخار، حرکت مارپیچ و روبه بالا دارد و زندگی همواره بهتر و بهتر می شود. البته حالا متوجه شده بود عکسش صحیح است عصر طلایی همان ابتدا از راه رسیده بود شروعی معصومانه و بچه گربهوار سرشار از بازیگوشی، گوشی قایم با پرچم بازی، قل با گوتی خالی مغازه پدر زمانی توهی از احساس گناه، تزویر، دانش یا وظیفه که بهترین دوره زندگی بود و هرچه روزها و سالهای بیشتری گذشت شلی این آتش کم سوتر شد و هستی بیرحمتر و خشنتر بدترینش هم برای آخر گذاشته شده است به یاد حرفهای جلسه پیش فیلیپ درباره کودکی افتاد. شکی وجود ندارد در این قسمت حق با نیچه و شوپنهاور بوده است. جولیوس با اندوه سرتکان داد: حقیقت داشت که هرگز واقعاً طعم لحظه را نچشیده بود. هرگز اکنون را درک نکرده بود. هرگز به خود نگفته بود همین این لحظه امروز این همان چیزی چیزیست که میخواهم. اینهاست که به روزهای خوش گذشته بدن میشود. بگذار در همین لحظه بمانم، بگذار در همین جاریشه بدوانم نه، او همیشه داشت خوشتمترین شکار زندگی را هنوز نیافته و همیشه چشم انتظار آینده بود زمانی که پیرتر، زیرکتر، بزرگتر و ثروتمندتر شود و بعد آشوب از راه رسید، همه چیز زیر رو شد گروپاشی ناگهانی و فاجعه بار نگاه آرمانگرایانه به آینده و آغاز حسرتی بیتابانه برای آنچه قبلا بوده است. این واژگونی کی اتفاق افتاد؟ کی حسرت گذشته جایگزین نوید طلایی فردا شد؟ در دوره کالج نبود که جولیوس همه چیز را تلیئه دستیابی به آن جایزه بزرگ میدید. ورود به دانشکده پزشکی. در دانشکده پزشکی هم نبود جایی که در سالهای نخوستار داشت سر کلاس حاضر نشود و به جای آن مثل دانشجویان دوره بالینی به بخش ها سر بزند. آن هم با روپوش سفید و گوشی پزشکی در جیب یا دوره گردن همچون شال گردنی پولادی لاستیکی. در دوره بالینی و سالهای سوم و چهارم پزشکی هم نبود. زمانی که بالاخره جایگاهش را در بخش های بیمارستانی یافته بود. آن موقع هم در حسرت تجربه بیشتر بود. مهم بودن، تصمیم حیاتی بالینی گرفتن، زندگی ها را نجات دادن، لباس آبی دستیار جراح را پوشیدن و تخت بیمارستان را در طول راهروی بیمارستان هل دادن حتی وقتی دستیار ارشد روانپزشکی شده بود به پشت پرده شمنگرایی سرک می کشید و در برابر محدودیت ها و عدم قطعیت رشتهی که برگزیده بود مبهوت می ماند شکی نبود که بیمیلی مزمن و مصررانی جولیوس به درک و دریافت اکنون به زندگی مشترکش صدمه زده بود. با آنکه از همان لحظه‌ای که در کلاس دهم ده کشمش چشمش به میریام افتاده بود، آشغش شده بود، همزمان او را مانعی می در برابر توده زنانی که حس می کرد حق دارد از وجودشان لذت ببرد. هرگز به طور کامل نپذیرفته بود دوران جفتیابیش به پایان رسیده یا از آزادیش برای پیروی از شهوت کمی کاسته شده است. در آغاز دوره کارورزی متوجه شد بخش استراحت کارکنان بیمارستان درست مجاور خوابگاه دانشکده پرستاریست که پر بود از پرستاران جوان خواستنی که دکترها را میپرستیدند. این واژگونگی باید بعد از مرگ میریام اتفاق افتاده باشد. در این ده سالی که حادثه رانندگی میریام را از او گرفته بود، بیش از زمان زنده بودنش گرامیاش داشته بود. جولیوس، گاهی که فکر میکرد چطور دوران شادی و سرور لطیفی که با میریام داشت، آن لحظات اوج هماسه زندگی آمده و گذشته بیان که او تمام و کمال در یابدشان آهی از سر نومیدی میکشید. حتی حالا بعد از گذشته یک دهه هنوز نمیتوانست نامش را به سرعت بر زبان بیاورد بیان که بعد از هر هجاد درنگی کند نیز میدانست که هرگز هیچ زن دیگری واقعا برای او اهمیت نداشته است چند زن موقتا تنهاییش را تااندند ولی چیزی نگذشت که هم او و هم آنها دریافتند که هرگز جای میریام را نخواهند گرفت اخیرا تنهاییش با حلقه بزرگی از دوستان مرد که بعضی متعلق به گروه حمایتی روانپزشکیش بودند و نیز به وسیله دو فرزندش تخفیف یافته بود. در چند سال اخیر همه تعطیلاتش را در خانواده و با دو فرزند و پنج نوهش گذرانده بود. ولی همه این افکار و یادآوریها ها پیش ها و فیلم های شبانهای شبانهی بیش نبود. نمای اصلی این یادآوری شبانه تمرینی بود برای سخنرانی که قرار بود امروز عصر برای اعضای گروه ایراد کند. تا همین حالا موضوع سرطانش را با بسیاری از دوستان و بیمارانی که تحت درمان فردیش بودند در میان گذاشته بود. ولی عجیب بود که دل دردناکی با ظاهر شدن در گروه داشت. جولیوس اندیشید این باید مربوط به عشقی باشد که اون نسبت به گروه درمانیش حس میکند. در طول این 25 سال مشتاقانه به استقبال تک تک جلساتش رفته بود گروه چیزی بیش از جمع چند نفر بود زندگی خودش را داشت و شخصیتی پایدار با اینکه که هیچیک از اعضای اولی دیگر در گروه نبودند گروه یک خود استوار و پابرجا داشت فرهنگی اصیل که جاوید و همیشگی به نظر می آمد هیچیک از اعضای نمی توانست هنجارهای گروه را برشمارد ولی در این که فلان رفتار مناسب یا نامتناسب با گروه است توافق داشتند. گروه بیش از هر یک از وقایی گذشته انرژی می طلبید و جولیوس کوشش بسیاری کرده بود تا آن را شناور نگه دارد. کشتی نظر کرده قدیمی و پرارزشی که انبوهی از مردمان رنج کشیده را به بندرگاه های امتر و شادتر منتقل کرده بود. چه تعداد؟ از آنجا که متوسط حضور افراد در گروه دو تا سه سال بود، جولیوس هادز این کشتی، دست کم یکصد مسافر داشته است. گاه خاطره ای از اعضای از دست رفته، برشی از یک گفتگو، تصویر گذرایی از یک شهر یا یک حادثه از ذهن جولیوس میگذشت. وقتی می‌دید این باریکه های خاطره تنها بازمانده ای آن اوقات پرشور و ها و رویدادهای سرزنده و سرشار از نیرو و معنا هستند، غمگین می‌شود. سالها پیش جولیوس به تجربه ضبط ویدیویی گروه و پخش دوباره ی بعضی بخش ها و مکالمه های دشوار در جلسه بعد دست زده بود. این نوارهای قدیمی دیگر با دستگاه‌های ویدیویی امروز همخانی نداشتند. گاهی دلش می‌خواست آن‌ها را از انبار زیرزمین بیرون بکشد، به اشکال جدید تبدیلشان کند و بیماران از دست رفته را دوباره به زندگی برگرداند. ولی هرگز این کار را نکرد. تا به رویارویی با ماهیت واهی و گول‌زننده زندگی را نداشت. اینکه زندگی بر صفحه نوار بدرخشد و لحظه اکنون و هر لحظه‌ای که از راه می‌رسد به سرعت در پوچی موجک های الکترومغناطیسی رنگ ببازد. گروه‌ها برای شکلگیری ثبات و اعتماد نیازمند زمانند. اغلب پیش می‌آید که یک گروه تازه شکل گرفته اعضایی را که به دلیل نبود انگیزه یا توانایی قادر نیستند وظیفه گروه را به انجام رسانند، به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. بعد ممکن است گروه هفته ها درگیر تعارض ناآرام برای دستیابی اعضا به جایگاه قدرت، مهوریت و تأثیرگذاری شود. ولی در نهایت، وقتی اعتماد شکل میگیرد، جف درمانی و آشتی دهنده حکم فرما می شود. اسکات یک بار گروه را به پولی تشبیه کرد که در جنگ ساخته شده است. مرحله سازندگی تلفات زیادی دارد، ولی وقتی پل ساخته شد، افراد زیادی را به جایی بهتر رهنم جولیوس مقالات تخصصی زیادی نوشته بود درباره وجوه مختلف کمک گرفتن بیماران از گروه های درمانی. ولی همیشه در یافتن زبان وصف کننده این انصار حیاتی مشکل داشت. جفه درمانی گروه در یک مقاله آن را به درمان طبی زاییات شدید پوستی تشبیه کرد که بیمار را در تسکین دهنده حاوی بلغور جوهد و سرفرو می یکی از مهمترین فواید جانبی هدایت یک گروه واقعیتی که هرگز زننوشته های تخصصی به آن اشاره نمی شود این است که یک گروه مختدر اغلب درمانگر را هم در کنار بیماران شفا میدهد و درمان می کند. با اینکه جولیوس اغلب بعد از هر جلسه احساس آرامش و تسکین را تجربه میکرد، هرگز درباره ساس کار دقیقه آن مطمئن نبود. آیا نتیجه فرموش کردن خود برای 90 دقیقه بود یا حاصل انجام عمل نودوستانی درمان یا لذت بردن از مهارت خود احساس قرور نسبت به توانایی های خود و برخورداری از توجه و احترام دیگران؟ همه اینها با هم؟ جولیوس کوشش برای دقیق بودن را کنار گذاشته بود و در این چند سال همان توصیف خودمانی فرو رفتن در آبهای شفا بخش گروه را پذیرفته بود. اعلام ابتلا به ملانوم در گروه برایش عملی بسیار مهم بود اندیشید رو راستی با خانواده، دوستان و همه جماعت پشت صحنه یک چیز است و افشاگری شخصی برای تماشاگران اصلیش آن گروه منتخبی که او برایشان درمانگر، طبیب، کشیش و شمن بوده یک چیز دیگر این گامی برگشت نپذیر بود پذیرش این که از کار افتاده شده اعترافی آشکار به اینکه زندگیش دیگر مارپیچی رو به بالا و به سوی آینده ای و درخشان تر نیست. جولیوس به عضو قایب گروه پام که در سفر بود و تا یک ماه دیگر بر نمی خیلی فکر کرده بود. متاسف بود که امروز هنگام افشاگریش حضور نخواهد داشت. پام عضو کلیدی گروه بود و همیشه حضوری آرامش دهنده و شفابخش برای دیگران و نیز برای او داشت. و از این واقعیت که گروه نتوانسته از بابت خشم شدید و تفکر واسواسگونه او نسبت به شوهر و معشوق سابقش کمکی به او کند شرمنده بود. تا جایی که پم با نامیدی و در پی دریافت کمک برای مراقبه به خلوتگاهی بودایی در هند رفته بود. و به این ترتیب جولیوس در حال دست و پنجه نم کردن با این احساسات ساعت 4 و بعد از ظهر آن روز وارد اتاق گروه شد. عذاب پیش از او آمده بودند و در حال مطالعه یه کاغذی بودند که با ورود جولیوس به سرعت برق پنهان شد. اندیشید عجیب است. مگر دیر کرده بود؟ نگاه سریعی به ساعت مچیش انداخت. نه. درست چهار و سی دقیقه بود. اهمیتی به این موضوع نداد و نطقه از پیش تداروه دیدهاش را آغاز کرد. خب اجازه بدید شروع کنیم. همونجور که میدونید من عادت ندارم جلسه رو خودم شروع کنم ولی امروز استثناست چون موضوعی هست که لازم از قفصه سینم بیرون بریزم چیزی که گفتنش برام سخته پس گوش کنید حدود یک ماه پیش متوجه شدم به یه نوع جدی بیرو درواسی چیزی بیش از جدی در واقع به یه نوع مهلکی از سرطان پوست یعنی ملانوم بدخین مبتلا شدم فکر میکردم از سلامت خوبی برخوردارم ولی این مسئله در معاینات دوره ای اخیرم مشخص شد جولیوس مکس کرد یک جای کاری ایراد داشت حالت چهره و زبان بدن اعضا درست نبود وضعیت بدنیشان نادرست بود باید به سمت او برمیگشتند باید توجهشان به او می بود. ولی هیچ کس رویش کاملا به او نبود هیچ کس با او تماس چشمی نداشت چشمان همه از او میگوریخت و تمرکز نداشت بجز چشمان ربکا که یواشکی مشغول مطالعه برگه کاغذ روی دامنش بود جولیوس پرسید چه خبره؟ حسامینه که انگار با هیچ کس ارتباط برقرار نمی کنم. به نظر میاد امروز همه شما دلمشگولی دیگه ای داری ربکا؟ اون چیه داری میخونی؟ ربکا بی درنگ کاغذ را تا کرد و در درکیف دستیش فرو برد و نگاهش را از جولیوس دزدید. همه ساکت نشستند تا اینکه تونی سکوت را شکست. خب، من باید حرف بزنم. نمیتونم به جای ریبکا حرف بزنم، ولی از طرف خودم میتونم. مشکل من این بود که وقتی داشتی حرف میزدی، از قبل میدونستم میخوای راجب وضع سلامتیت بگی. برای همین نگاه کردن به تو تظاهر به اینکه دارم چیز تازهی میشنوم برام سخت بود. و در این حال نمیتونستم حرفت رو قطع کنم و بگم که میدونم چی میخوای بگی چطور؟ منظورت چیه که میدونستی من میخوام چی بگم؟ امروز اینجا چه خبره؟ گیل گفت: « متاسفم جولیوس بذار من توضیح بدم. منظورم اینه که از یک جهت این منم که باید سرزنش بشم بعد از جلسه پیش من هنوز سردرگم بودم و نمیدونستم آیا به خونه برگردم یا نه؟ یا که این کارو بکنم یا شب کجا بخوابم کلی به تک تک اعضا اصرار کردم که با من به کافه بیان و اونجا جلسه رو ادامه بدیم جولیوس با ریشخند و در حالی که انگار دارد با حرکت دستش ارکستری را رهبری میکند گفت راستی بعدش چی شد خب فیلیپ به ما گفت که جریان چیه میدونی منظورم درباره وضع سلامتی تو و درباره اون میلوم بدخیم. فیلیپ به آرامی صحبتش را قطع کرد که ملانو گیل نگاهی به کاغذی که در دست داشت انداخت درسته ملانوم ممنون فیلیپ فیلیپ گفت میلوم ملتیپل یک جور سرطان حسدخانه ملانوم یک جور سرطان پوسته یاد ملانین بیفت رنگدانهی که رنگ پوست رو تعییم می جولیوس حرفش را قطع کرد و در حالی که با حرکت دست گیل یا فیلیپ را به توضیح دادن دعوت می گفت پس این کاغذ ها... گیل برگه خودش رو به طرف جولیوس دراز کرد و او عنوان ملانوم بدخیم را بالای آن دید. فیلیپ اطلاعات مربوط به وضعیت تو رو دانلود کرده و خلاصه ای ازش تهیه کرده و همین چند دقیقه پیش که وارد اتاق شدیم اونو به ما داد. جولیوس گیج و سراسیمه به پشتی صندلی تکیه داد. من نمی چطور بگم. حس می کنم پیش دستی کردید. حس می کنم یه داستان خیلی مهم داشتم که براتون بگم و خبر دست اولم لو رفته داستان زندگی یا یا شاید داستان مرگ خودم لو رفته بعد برگشت و در حالی که مستقیم با فیلیپ حرف میزد گفت هیچ فکر کردی که ممکنه من چه احساسی پیدا کنم؟ فیلیپ خونسرد و بیعتنه ماند. نه جواب داد و نه نگاهی به جودیوز انداخت. ربکا که گیری موهایش را برداشته بود، موهای بلند مشکیش را رها کرده بود و دوباره بالای سرش جمع کرده بود گفت این آدلانه نیست جولیوس، تقصیر اون نیست. اولا فیلیپ اصلا دلش نمیخواست بعد از جلسه به کافه بیاد. گفت اجتماعی نیست و گفت یه باید خودش رو برای کلاسش آماده کنه. ما مجبور شدیم عملا به زور اون اونجا بکشونیمش. گیل باقی گرفت. راست میگه ما بیشتر درباره من و همسرم و اینکه اون شب باید کجا بخوابم حرف زدیم بعد هممون از فیلیپ پرسیدیم چی شده که درمان رو شروع کرده که البته این خیلی طبیعیه از همه اعضای جدید این سوال رو میکنیم. و اون از تماس تلفنی گفت که بیماری دلتش بوده این خبر ما رو مبهوت کرد و نتونستیم ازش بگذاریم و اصرار کردیم هرچی میدونه برامون بگه حالا که فکر میکنم نمیدونم چطور میتونست نگه ربکا اضافه کرد، فیلیپ هتو پرسید آیا برای گروه حلاله که بدون تو دور هم جمع بشه؟ جولیوس پرسید، حلال؟ فیلیپ چنین حرفی زد؟ ربکا گفت، خب نه، فکر کنم حلال اصطلاح من بود، نه اون. ولی معنی حرفش همین بود و من بهش گفتم ما اغلب بعد از گروه یه جلسه در کافه داریم و تو هم هیچ وقت اعتراضی نکردی جز اینکه اصرار داری هر کسی رو که اینجا نبوده در جلسه قرار بدیم تا رازی در بین نباشه. خوب شد ربکا و گیل این فرصت را به جولیوس دادند که خود را آرام کند. ذهنش از منفی بافی به جوش آمده بود. این مردک ناسپاس، این حرومزاده آدم فروش، من دارم سعی میکنم کاری براش بکنم و این چیزیه که در مقابل دریافت میکنم. هیچ کار خوبی بی اثر نمیمونه. میتونم تصور کنم چقدر کم درباره خودش و اینکه چرا تحت درمان بوده به گروه گفته. شرط میبندم خیلی راحت فراموش کرده به گروه به یکی که با حدود هزار تا زن رابطه داشته بدون اینکه ذره محبت یا علاقه نسبت به حتی یکیشون حس کرده باشه. ولی همه این افکار رو نزد خود نگه داشت و با مرور وقایی که بعد از آخرین جلسه پیش آمده بود، آرام آرام کینه از ذهنش دودود. متوجه شد البته که گروه برای شرکت فیلیپ در جلسه بعد از گروه اصرار زیادی به او کردن و فیلیپ در نهایت مجبور شده با آنها برود. در واقع اشتباه او بود که درباره این گرده همایی های دوره ی گروه چیزی به فیلیپ نگفته بود. و البته که اعضا درباره علت شروع درمان از او سوال کردند حق و گیل بود گروه هرگز فراموش نمیکرد این پرسش را از عضو تازه بپرسد و البته که فیلیپ مجبور بود داستان تاریخ چه وسه از قرارداد درمانی غیر معمولشان را آشکار کند چه انتخاب دیگری داشت از اونجا که توضیح اطلاعات درباره ملانوم بدخیم ایده خود فیلیپ بود شکی وجود نداشت که این شیوه خودشیرینیش نزد گروه بود جولیوس حس می کرد از درون میلرزد و نمی توانست لبخندی به لب بیاورد. ولی خودش را جمع و جور کرد و ادامه داد. خب همه یه سعیم رو می کنم تا در این بار حرف بزنم. ربکا اجازه بده یه نگاه درست و حسابی به اون صفحه بندازم جولیوس به سرعت برگه را از نظر گذارند. این اطلاعات پزشکی دقیق به نظر میان پس تکرارشون نمیکنم. فقط شما رو در تجربه خودم صحیم می کنم ماجرا اینجوری شروع شد که دکترم یه خاله غیرعادی روی پشتم دید و نمونه برداری کرد و نمونه برداری تایید کرد که این ملانوم بدخیمه برای همین بود که جلسه گروه رو لقف کردم یکی دو هفته منقلب بودم واقعا سخت و تونستم هضمش کنم صدایش لرزید همونجوری که می بینید هنوزم سخته مکسی کرد، نفس عمیقی کشید و ادامه داد دکتوران نمیتونن آیندم پیش پیشبینی کنن ولی مهم اینه که بهم هم گفتن یک سال فرصت دارم پس این گروه برای دوازده ماه دیگه روال معمول خودش رو داره نه، سب کنید، بذارید اینجوری بگم تا جایی که وز مزاجیم اجازه بده به خودم قول میدم که جلساتمون رو تا یک سال آینده ادامه بدم یعنی تا زمانی که این گروه درمانی به پایان برسه ناشیگریمو ببخشید ولی تمرینی در این مورد نداشتم بانی پرسید جولیوس واقعا مهلکه. اطلاعات اینترنتی فیلیپ میگه همه این آمارها به مرحله بندی بر اساس میزان پیشرفت ملانون بستگی داره پرسش سریحیه پاسخ سریحش هم بله است قطعاً مهلکه. احتمال اینکه در آینده از پا درم بیاره زیاده. میدونم سوالی نبود که بشه به آسونی پرسید و از سراحتت ممنونم بانی. چون منم مثل بیشتر آدمهایی که بیماری مهمی دارن از کسانی که موضوع رو لفت میدن بیزارم. این کار فقط منو میترسونه و باعث میشه احساس تنهایی کنم. باید به واقعیت جدیدم عادت کنم. دوستش ندارم. ولی واقعیت اینه که زندگیم به عنوان یه آدم سالمه بیخیال داره به آخر میرسه. ریبکا پرسید دارم به چیزی فکر میکنم که فیلیپ هفته پیش به گیل گفت. نمیدونم به دردت میخوره یا نه جولیوس. مطمئن نیستم اینجا توی گروه عنوان شد یا توی کافه. ولی درباره‌ی تعریف خودت یا زندگی خودت به وسیله‌ی دلبستگی بود. درست میگم فیلیپ؟ با لحنی موقر و با پرهیز از تماس چشمی گفت وقتی هفته پیش با گیل حرف می زدم اشاره کردم که هرچی دللبستگی های فرد بیشتر باشه زندگی کمر شکنتر می شه. و رنجی که فرد موقع جدایی از این دلبستگی ها باید تحمل کنه هم بیشتر میشه. شوپنهاور و بودایی ها هر دو معتقدن فرد باید خود را از دلبستگی هاش جدا کنه و جولیوس صحبتش را قطع کرد. فکر نمی کنم این به درد من بخوره. و علاوه مطمئن نیستم این همون مسیری باشه که قرار این جلسه طی کنه متوجه نگاه سریع معنیداری شد که بین ربکا و گین رد و بدل شد ولی ادامه داد من درست از نقطه مقابل به موضوع نگاه میکنم دلبستگی ها و فراوانیشون اجزای ضروری یه زندگی تمام عیارن و پرهیز از دلبستگی ها به دلیل رنجی که همراه میارن رهنمودی قطعی برای نیمه کار زیستنه منظورم این نیست که رشته کلامت رو ببرم ربکا ولی فکر می‌کنم اگه به واکنش‌های تو و واکنش‌های بقیه به خبری که من دادم برگردیم بیشتر ممکنه به نتیجه برسیم. روشنه که خبر شدن از سرطان من باید احساسات نیرومندی رو برانگیخته باشه. من مدت درازیه که خیلی از شماها رو می‌شناسم. جولیوس دست از حرف زدن برداشت و نگاهی به بیمارانش انداخت. تونیکی که در صندلی فرو رفته بود حرکتی به خود داد. خب وقتی کمی پیش گفتی چیزی که باید برای ما مهم باشه اینه که تا کی میتونی این گروهو سرپرستی کنی شکه شدم. حتی من که همیشه به پوست کلفتی متهم شدم از این حرفت به شدت ناراحت شدم. کار نمیکنم که این مسئله از ذهنم گذشت ولی جولیوس چیزی که بیشتر از همه مایه غممه اینه که این ماجرا برای تو چه معنی داره؟ منظورم اینه که بذار رو راست باشیم. تو خیلی یعنی واقعا برای مهمی. کمکم کردی با بدترین شرایط کنار بیام. میخوام بگم کاری هست که بتونم برات بکنم. باید خیلی برات وحشتناک بوده باشه. گیل گفت حرف منم همینه. و باقی اعضا بجز فیلیپ با او هم صدا شدند. جواب این سؤال رو میدم تو ولی اول میخوام بگم چقدر تحت تاثیر قرار گرفتم. یکی دو سال پیش برات ممکن نبود که اینقدر سریح باشی و اینقدر سخاوتمندانه مندانه به دیگران فکر کنی. ولی جواب سوالت اینه که خیلی وحشتناک بود. احساساتم اوج و فرود داره. یکی دو هفته اول وقتی جلسه گروه و لغف کردم از پا افتاده بودم. یک سر با دوستانم و همه شبکه حمایتی اطرافم حرف میزدم. حالا در این لحظه بهترم به همه چیز عادت میکنی حتی به بیماری کشنده دیشبین ترجیبن مدام در ذهنم تکرار میشد که زندگی یعنی فقدان پشت فقدان جولیوس مکس کرد حرفی نزد همه به کف اتاق خیره شده بودند جولیوس اضافه کرد دلم میخواد راحت باش برخورد کنم درباره همه چیزش حرف بزنم ملاحظه ی چیزی رو نخواهم کرد ولی الان فکر میکنم حرفم رو زدم و نیازی نمیبینم همه جلسه به من اختصاص داده بشه مگه اینکه شما سوال خاصی داشته باشید. میخوام بگم الان انرژی همیشگیم رو برای کار در اینجا دارم در واقع برای مهمه که کارمون رو مثل قبل ادامه بدیم بعد از سکوتی کوتاه بانی گفت جاسته بگم جولیوس چیزایی هست که بتونم ازشون حرف بزنم ولی نمیدونم مشکلاتی که من تو سرمه در مقایسه با چیزایی که تو داری از سرت میگذرونی خیلی بی اهمیتن. گیل نگاهش را بالا آورد و اضافه کرد منم هم همینجور مسائل من اینکه یاد بگیرم چطور بزنم حرف بزنم کنارش بمونم یا بذارم کشتی غرق بشه همه اینا در مقایسه خیلی پیش با افتادن فیلیپ این جمله را اشاره ای به خودش تلقی کرد و گفت اسپینوزا آشق به کارگیری عبارت از دیدگاه عبدیت بود او می گفت اگر از دیدگاه ابدیت به آزار آزاردهنده روزمره نگاه کنیم کمتر آشروبنده به نظر خواهند اومد من معتقدم این مفهوم ابزار با ارزشی برای روان درمانیه شاید در اینجا فیلیپ برگشت و مستقیما جولیوس را مخاطب خود قرار داد حتی برای ضربه جدی که تو در مرزش قرار گرفتی مایه تسلی باشه. متوجه هستم میخوای چیزی به من پیشکش کنی فیلیپ. و از این بابت ممنونم. ولی در حال حاضر ایده نگاه به زندگی از منظر کیهانی چاشنی مناسبی برای طب نیست. بزار بگم چرا. دیشب خوب نخوابیدم و این قصه به دلم افتاد که چرا به موقع قدر چیزهایی رو که داشتم ندونستم. وقتی جوان بودم، همیشه زمان حال رو پیش درآمدی برای اتفاق بهتری که قرار بود بیفته می دونستم. و بعد سالها گذشت و ناگهان متوجه شدم دارم برعکس عمل می کنم. خودم رو در حسرت گذشته فرو بردم. چیزی که به کافی به اون نپرداختم گرامی داشتن هر لحظه است. و مشکلی که در راه حل دست شستن از دل های تو هستم همینه. انگار زندگی رو از اون سر تلسکوپ ببینی. گیل گفت، جولیوس میخوام اینجا از مشاهدهم بگم. فکر میکنم امکان نداره فیلیپ چیزی بگه که تو قبول کنی. مشاهده چیزیه که من همیشه بهش توجه میکنم گیل. ولی این فقط یه نظره. مشاهدهش کجا بود؟ خب مشاهدهش اینجاست که تو به هیچ کدوم از چیزایی که اون بهت پیشکش میکنه احترام نمیذاری. ربکا گفت، من میدونم جولیوس در این مورد چی میگه گیل. این هنوز هم یه مشاهده به حساب نمیاد این حدسی در مورد احساسات اونه چیزی که من مشاهده میکنم روکرز رو کرد به جولیوس اینه که این اولین باریه که تو فیلیپ هم دیگر رو گرچه بازم نیمه مستقیم مخاطب قرار دادین و تو امروز چندین بار صحبت فیلیپ رو قطع کردی. کاری که تا حالا ندیدم با هیچ کس دیگه ای بکنی جولیوس با سخت داد احسنت ربکا. این شد یک مشاهده بیپرده و دقیق. تونی گفت من اصلا سر در نمیارم جولیوس. نمیفهمم بین تو و فیلیپ چه خبره. راست میگه که خیلی غیر منتظره بهش تلفن کردی؟ جولیوس چند دقیقه ای با گردن خمیده نشست و بعد گفت بله میفهمم که براتون خیلی گیش کنند است. خیلی خوب. شکل بیپرده ماجرا یا بیپرده در حدی که حافظه من اجازه میده از این قراره. بعد از تشخیصی که برای من گذاشته شد، به یه نومیدی درست و حسابی فرو رفتم. حس می کردم به مرگ محکوم شدم و این مسئله کاملا منو از ما انداخت. در کنار رفکار تیر و تاری که توی ذهنم بود، این سوال برام پیش اومد که آیا در کارهایی که در زندگیم انجام دادم، هیچ معنای ماندگاری بوده یا نه؟ این سوال یکی دو روز در ذهنم چرخید و چرخید، واز اونجایی که زندگی من با کارم گره خورده شروع کردم به فکر کردن درباره بیمارانی که در گذشته داشتم. آیا واقعا تونسته بودم تأثیری ماندگار بلیه زندگی بذارم؟ حس کردم وقتی برای طرف کردن ندارم و این شد که در جا تصمیم گرفتم با بعضی از بیماران قدیمیم تماس بگیرم. فیلیپ اولین نفر و تا این لحظه تنها کسیه که سراغش رو گرفتم. تونی پرسید: و چرا فیلیپ رو انتخاب کردی؟ هان، این همون سوال 64 هزار دلاریه یا شاید این کهنه شده باشه این روزا بهش میگن سوال 64 میلیون دلاری؟ جواب کتا اینه که درست نمیدونم خودم هم دربارهش زیاد فکر کردم انتخاب زیرکان نبود چون اگه میخواستم از ارزش خودم مطمئن بشم نامزدای بهتر فراوون داشتم با اینکه در طول سه سال تلاشم تلاشمو کرده بودم نتونسته بودم کمکی به فیلیپ بکنم شاید امیدوار بودم گزارشی از اثرات تأخیری درمان به من بده بعضی بیماران چنین چیزایی رو گزارش میکنن ولی در مورد اون اینطور نبود شاید خدازارانه عمل کردم و میخواستم خودم رو به درد سر بندازم شاید بزرگترین شکستم و انتخاب کردم تا بخت دیگهای به خودم بدم اعتراف میکنم بیرودرواستی نمیدونم چه انگیزه ای داشتم. و بعد در حین من فیلیپ گفت که حرفش را تغییر داده و پرسی تمایل دارم سرپرستیش رو قبول کنم یا نه. فیلیپ جولیوس رو به فیلیپ کرد. فکر می کنم در این مورد با گروه حرف زدی. جزئیات ضروری رو براشون گفتم. میتونی یکم مرموزتر حرف بزنی؟ فیلیپ نگاهش را برگرداند باقی گروه ناراحت به نظر می میآمدند و جولیوس بعد از سکوتی طولانی گفت برای این تنه مذرت میخوام فیلیپ ولی میتونی ببینی جوابت منو در چه موقعیتی قرار داده همونجور که گفتم جزیات ضروری رو برشون توضیح دادم بانی رو به جولیوس کرد روک و راست بگم وضن ناخوشایندی و من نجاتت میدم فکر نمی کنم امروز نیازی به جر و بحث و بگو مگو داشته باشی. فکر می کنم لازم مراقبت باشیم. خواهش می کنم بگو امروز چی کار می برات بکنم. ممنون بانی. حق با توه. امروز عصبی هم. سوالت خیلی دوست داشتنیه ولی مطمئن نیستم بتونم جواب بدم می یه راز بزرگ و بهتون بگم. بارها شده به دلیل مسائل شخصی با احساس بدی وارد این اتاق شدم و با احساسی به مراتب بهترون رو ترک کردم فقط برای اینکه بخشی از این گروه معرکه بودم. پس شاید جواب سوالت همین باشه. بهترین چیز برای من اینه که همه شما از گروه استفاده کنین و اجازه ندین وضع من کارمون رو متوقف کنه. بعد از سکوتی کوتاه تونی گفت با چیزهایی که امروز گذشت تکلیف سختیه. گیل گفت درسته صحبت از هر چیز دیگه ناجور و ناخوشایند به نظر میاد. بانی گفت این از اون مواقعیه که جای پم رو خیلی خالی میکنم. اون بود که حتی در ناجورترین وضعیت همیشه میدونست چی کار باید بکنه. جولیوس گفت چه جالب من هم امروز داشتم به اون فکر میکردم. ریبکا گفت این باید تلپاتی باشه درست روزی یه دقیقه قبل پم از ذهن منم گذشت اون موقعی که جولیوس داشت از موفقیت ها و شکست ها حرف میزد. رو کرد به جولیوس میدونم که پم بچه محبوب تو در خانواده ما توی این گروهه و این سوال نیست کاملا روشنه سوال اینه که در مورد اون هم احساس شکست می کنی؟ می اون دو ماه مرخصی گرفت که نوع دیگه ای از درمان رو امتحان کنه چون ما نتونستیم کمکی بهش بکنیم. این نباید اثر خوبی روی اعتماد به نفس تو گذاشته باشه. جولیوس اشاره به فیلیپ کرد و خطاب به ربکا گفت شاید باید برش توضیح بدی. ربکا به فیلیپ که به چشمان او نگاه نمی کرد گفت پمیه نیروی واقعی در گروه ماست. هم ازدواج و هم رابطه بعدیش به جدایی کشیده. اون از هر دو تا مرد رنجیده و روز و شب به اونا فکر میکنه ما همه تلاشمونو کردیم ولی نتونستیم کمکش کنیم اون شد به هند بره و از یک مرشد معروف در یه خلوتگاه مراقبه بودایی ها کمک بخواد فیلیپ واکنشی نشان نداد ریبکا برگشت و رو کرد به جولیوس خب احساس درباره رفتن اون چی بود؟ میدونی اگه پونزده سال پیش بود خیلی ناراحت می شدم. نه بیشتر از این حرفا. ممکن بود موزه محکمی در برابرش بگیرم و اصرار داشته باشم که جست و جوش برای شکل دیگری از وارستگی چیزی نیست جز مقاومت در برابر تغییر. ولی حالا عوض شدم. حالا حس می به همه کمکی که می توانم بگیرم نیاز دارم. و متوجه شدم سهم شدن در اشکال دیگر رشد، حتی با مایه های غیرمنطقی اغلب دریچه های تازهی به روی درمان باز میکنه و امیدوارم این در مورد پم هم صدق کنه. فیلیپ گفت این یکی شاید نه تنها غیرمنطقی نباشه بلکه بهترین انتخاب برای اون باشه. شپنهاور به تمرین مراقبه شرقی و تحکیدش بر پا کردن ذهن عبور از خیالهای باتل و مشاهده از ورای آنها و کاهش درد و رنج به وسیله یادگیری هنر رها شدن از دل بستگی ها نگاه مثبتی داشت در واقع او اولین کسی بود که اندیشههای شرقی رو به فلسفه غرب معرفی کرد اظهار نظر فیلیپ خطا به فرد خاصی نبود و کسی هم واکنشی نشان نداد شنیدن مدام اسم شپنهاور جولیوس را عصبانی میکرد ولی وقتی دید چند تن از اعضا سری به نشانه قدردانی از گفته فیلیپ تکان دادند، چیزی نگفت. بعد از سکوتی کوتاه، استوارت گفت بهتر نیست برگردیم به جایی که چند دقیقه پیش بودیم، یعنی اونجا که جولیوس گفت بهترین کار براش اینه که ما کارمون رو در گروه ادامه بدیم؟ بانی گفت موافقم، ولی از کجا شروع کنیم؟ چطور از پیگیری وضعیت تو و همسرت شروع کنیم استوارت؟ آخرین چیزی که شنیدیم این بود که زن تیمین زده و گفته داره به جدایی فکر میکنه. اوزا آرومتره و به وضع قبلی برگشتیم. اون فاصلش رو حفظ میکنه. ولی دستکم کم بدتر نشده. بذار ببینم چه مسئله دیگه در گروه انتظارمون رو میکشه. استوارد نگاهش را در اتاق گذراند دو موضوع به نظرم میاد. گیل، تو روز چطورین؟ چه, چه خبر؟ و بانی؟ تو کمی قبل گفتی حرفایی داری ولی به نظرت خیلی جزئی میان. گیل که نگاهش را به زیر انداخته بود گفت امروز میخوام حرفی نزنم. هفته پیش خیلی از وقت گروه رو گرفتم ولی به شکست و تمکین ختم شد. شرمندم که با همون وز به خونه برگشتم. همه اون نصیحتهای خوب فیلیپو و همه شما رو حروم کردم. تو چطوری بانی؟ مسائل من امروز شبیه سیب های کوچیکه. جولیوس گفت: برداشت من از قانون بول یادت نره. مقدار کمی استراب اونقدر پخش میشه تا تمام حفره استرابمون رو پر کنه. استراب تو همون احساس بدی رو به تو میده که استراب دیگران با سرچشمه‌های واضحتر و فاجعه بارتر ایجاد میکنه. نگاهی به ساعتش انداخت. تقریبا از وقت گذشتیم. ولی میخوای موضوع رو باز کنی. توی دستور جلسه به بانی پرسید؟ منظورت اینه که میخوای هفته بعد بزدلیم رو کنار بذارم؟ خب، فکر بعدی نیست. چیزی که میخواستم مطرح کنم مربوط میشه به زشتی و چاقی و بدقوارگی من و زیبایی و شیکی ربکا و پم. ولی ربکا، تو به خصوص احساسات قدیمی ناراحت کننده ای رو در من زنده میکنی. اینکه همیشه دست و پا چلفتی و بد قیافه بودم و هیچ وقت انتخاب نشدم. بانی مکسی کرد و رو کرد به جولیوس. خب دیگه به زبون آوردم. جولیوس گفت و در دستور جلسه بعد قرار گرفت و به نشانه پایان جلسه از جا برخاست. فردی با استدادهای والا و نادر ذهنی که به هرفهی صرفاً مفید گمارده شود، مانند یک ظرف با ارزش تزیین شده با زیباترین نقش هاست که به جای دیگه آشپزخانه استفاده شود. قبرس. فصل چهاردن سال 187 چطور آرتور شوپنهاور تقریباً یک تاجر شد؟ سفر بزرگ خانواده شوپنهاور در سال 1804 پایان یافت و آرتور 16 ساله گرفته و مقموم دوره آموزشی 7 ساله اش را با سناتور ینیش تاجر پرآوازه هامبورگی آغاز کرد و به این ترتیب قولی را که به پدرش داده بود محترم شمرد. آرتور با پاگذاشتن به درون یک زندگی دوگانه همه تکالیف روزانه دوره آموزشیش را انجام میداد ولی هر لحظه اوقات فراغتش را مخفیانه به مطالعه اندیشه های بزرگ تاریخ خردورزی می گذارد. با این حال چنان پدرش را درونی کرده بود که این لحظات ربوده شده او را سرشار از پشیمانی می کرد. نه ماه بعد اتفاق گیش کننده افتاد که زندگی آرتور را برای همیشه تحت تاثیر قرار داد. با اینکه که هاینری شوپنهابر فقط 65 سال داشت سلامتیش به سرعت رو به نقصان می رفت. زرد روی خسته، افسرده و حواظ پرت می شد و اغلب آشناهای قدیمی را نمی شناخت در بیستم آوریل 1805 تصمیم گرفت به رغم رنجوری به فروشگاه بزرگش در هامبورگ سفر کند آهسته به بالاخانه انبار قله رفت و خود را از پنجره آنجا به درون آبراه هامبورگ افکند جسدش را چند ساعت بعد شناور در آب‌های زده یافتند. خودکشی همیشه ردی از شوک، احساس گناه و خشم در باقی ماندگان باقی می‌گذارد و آرتور ی این احساسات را تجربه کرد. احساسات پیچیده‌ای را که آرتور باید تجربه کرده باشد، به تصور درآورید. عشق به پدر به سوگ و فقدانی شدید بدل شده بود. رنجشی که از پدر در دل داشت آرتور به این نتیجه رسیده بود که پدرش برای همیشه راه او را برای فیلسوف شدن صد می کرد این موضوع خاننده را به یاد دو فیلسوف اخلاقی بزرگ و آزاداندیش دیگر نیچه و سارتر می اندازد که پدرانشان را خیلی زود از دست داده بودند اگر پدر نیچه که کشیش بود در دوران کودکی او از دنیا نرفته بود آیا نیچه می توانست به نیچه بدن شود؟ و سارتر در خود زندگی ناماش میگوید از اینکه بار مسئولیت کسب رضایت و تایید پدر را بردوش نمی نمیکشد احساس رهایی میکند. کند. با آنکه آثار آرتور شپنهاور گستره عظیمی از آرا، اناوین، بدایی تاریخی و علمی عقاید و تمایلات را شامل می شود، تنها دو قطعه پر اطوفت شخصی از او جای مانده که هر دو درباره هاینری شوپنهاور است. در یکی آرتور از احساس غرور نسبت به پدرش میگوید که صادقانه پذیرفته بود برای کسب درآمد تجارت میکند و سراحت او را با درویی بسیاری از همکاران فیلسوفش خصوصا هگل و فیشته مقایسه میکند که ولع ثروت، قدرت و شهرت دارند و همزمان تظاهر میکنند که در راه انسانیت قدم برمیدارند او در سن 60 سالگی تصمیم گرفت همه آثارش را به خاطره پدرش تقدیم کند بارها متن تقدیم نامه اش را بازنویسی کرد ولی در نهایت این تقدیم نامه هرگز منتشر نشد یکی از متنها اینجور آغاز می شد روحی بزرگ و شریف که همه ی آنچه هستم و آنچه به دست آورده را مدیون اویم به هر هران کس که در آثار من هر گونه مسر تسلی و رهنمودی یافته نام تو را بشنود و بداند اگر هاینری شوپنهاور چنان مردی نبود که بود؟ آرتور شوپنهاور صدها بار تباه شده بود و از میان رفته بود. از آنجا که هاینریش از هر گونه مهر آشکار نسبت به پسرش بیبهره بود، این شدت محبت فرزندی در آرتور هنوز مهمست. نامه نامه‌های هاینریش به آرتور سرشار از نکوهش و عیبجویی است. برای نمونه رقص و سوارکاری، وسیله امرار و معاش برای تاجری که نامههایش باید خوانده شود و باید خوب نوشته شود فراهم نمی کند. گهگاه می بینم حروف بزرگ دستنویس هایت هنوز واقعا زشت و قولاس یا از نکن که خیلی زنند است. اگر در اتاق ناهارخوری چشم کسی به آدم قوس کرده بخورد، فکر می کند او خیاط یا پینه دوزی است که لباس مبدل پوشیده است. هاینریش در آخرین نامه‌اش به پسر تعلیم می‌دهد: درباره استوار راه رفتن و راست نشستن توصیه می‌کنم از هر کسی که همراحت است، بخوا هر وقت این موضوع مهم را فراموش کردی، با ضربه ایمتوجاحت کند. این کاری است که فرزندان شاه می می‌کنند. بهتر است درد زودگذری را تحمل کنند تا آنکه همه زندگیشان پخمه به نظر آیند. آرتور پسر پدرش بود و نه فقط از لحاظ جسمانی که از لحاظ خلق و خو هم به او شباهت داشت. وقتی هفته ساله بود، مادرش برایش نوشت خوب میدانم احساس شادی جوانی را چه کم چشیده و چه استعداد زیادی برای تفکر مالی خولیایی از پدرت به ارس برده ای. آرتور درستی و صداقت امیق را هم از پدرش به ارس برده بود و این مسئله در موزنی که پس از مرگ پدر با آن روبرو شد، نقش سرنوستازی بازی کرد. آیا به رغم نفرتی که از دنیای تجارت داشت، باید این دوره آموزشی را ادامه میداد؟ در نهایت تصمیم گرفت همان کاری را بکند که پدرش کرده بود، وفای به عهد. درباره تصمیمش چنین نوشت: به حفظ جایگاه جایگاهم در کنار حامی تاجرم ادامه دادم، بخشی به این دلیل که سوگ سنگین توان روحم را در هم شکسته بود و بخشی به این دلیل که عذاب وجدان نمیگذاشت بلافاصله بعد از مرگ پدر از تصمیم او سرپیچی کنم. گرچه آرتور بعد از خودکشی پدرش دچار سکون شده بود و حس انجام وظیفه در و قدرت گرفته بود، مادرش به هیچ وجه چنین تمایلاتی نداشت. او همه زندگیش را به سرعت گردباد متحول کرد. در نامه‌ای به آرتور 17 ساله نوشت، شخصیت تو کاملا با من فرق دارد. تو طبیعتی مردد داری و من زیادی سریع و زیادی مسمم هستم. بعد از چند ماه بیوگی، خانه اربابی شوپنهاور را فروخت، کسب و کار تاریخی خانواده را برچید و منحل کرد و از هامبورگ رخت بربست برای آرتور لاف زد که من همیشه هیجان انگیزترین گزینه را برمیگزینم. انتخاب محل اقامتم را در نظر بگیر. هر زن دیگری به جای من بود نزد زادگاه، دوستان و خویشاوندانش برمیگشت. من در عوض وایمار را انتخاب کردم که تقریبا برایم ناشناخته بود. چرا وایمار؟ یوحانا بلند پرواز بود و در حسرت نزدیک شدن به کانون فرهنگ آلمان میسوخت او که به توانایی‌های اجتماعیش اعتماد کامل داشت میدانست اسمیتواند رویدادهای خوبی را باعث شود و در واقع در عرض چند ماه زندگی تازه و فوق‌العاده‌ای برای خود آفرید سرزنده ترین سالن وایمار را تأسیس کرد و دوستی نزدیکی را با گوته و بسیاری از نویسندگان و هنرمندان برجسته پیریخت خیلی زود حرفاش را ابتدا به عنوان یک نویسنده موفق سفرنامه های بازگو کننده سفر خانواده شوپنهاور و نیز سفر به جنوب فرانسه آغاز کرد و بعد به اصرار گوته به داستان روی آورد و یک رشته رمان‌های های عاشقانه نوشت. او یکی از نخستین زنان حقیقتا آزاد شده بود و نخستین زن آلمانی بود که توانست با درآمد نویسندگی زندگیاش را اداره کند. بعد از یک دهه یوهانا شوپنهاور رمان نویس مشهوری شده بود. دانین استیل قرن نوزدهم آلمان و آرتور شوپنهاور را برای دهه ها فقط به عنوان پسر یوهانا شوپنهاور می‌شناختند. آثار کامل یوهانا در اواخر دهه 1820 در یک دوره 20 جدی منتشر شد. با اینکه تاریخ یوهانا را زنی خودشیفته و بی محبت معرفی کرده، شک نیست که او و تنها او بود که آرتور را از بردگی آزاد کرد. و او را در مسیر فلسفه اش راه انداخت. وسیله نجات نامه ای ساز بود که در آوریل سال 1807 دو سال بعد از خودکشی پدر به آرتور نوشت. آرتور عزیزم لحن جدی و آرام نامه 28 آوریل از ذهن تو به ذهن من جاری شد. بیدارم کرد و نشان داد احتمالاً در مسیر از دست دادن کامل حرفت گام بر به همین دلیل است که باید هر کاری از دستم برمی آید بکنم تا تو را حفظ کنم من می دانم زیستن در زندگانیی که با روح آدمی در تضاد است یعنی چه و اگر امکانش باشد تو را از چنین چیزی معاف خواهم کرد پسر عزیزم اوه آرتور بسیار عزیزم چرا صدای من ارزشی چنان کم داشته آنچه تو امروز می در واقع زمانی پرشورترین آرزوی من بود چه تلاشی کردم تا به رغم همه ی آنچه ضد من بود محققش کنم. اگر نمیخواهی آبرو من به نفر نافرهیختگان آبرو بپیوندی، من حقیقتا نمیخواهم راحت را سد کنم. آرتور عزیزم، فقط خودت باید راحت را بجویی و برگزینی. من فقط هر کجا و هر طور که بتوانم اندرز میدهم و کمک میکنم. نخوست بکوش تا با خود به صلح برسی. به خاطر بسپار باید رشتهای را انتخاب کنی که درآمد خوبی را نوید دهد نه فقط چون این تنها راه زنده ماندن است بلکه نیز به این دلیل که ارسیات هرگز آنقدر نخواهد بود که روزگارت را متمولانه بگذرانی هر وقت انتخابت را کردی به من بگو ولی این تصمیمی است که باید به تنهایی بگیری اگر قدرت و جرأت کافی برای این کار در خودت دیدی من با کمال میل دستم را به تو خواهم داد. فقط تصور نکن زندگی یک انسان کامل و دانشمند زندگی لذت است. من اکنون دوروبرم آن را میبینم. زندگی خسته کننده پر دردسر سر و پر کار است. تنها لذت پرداختن به آن است که به آن جذابیت میبخشد. کسی با آن نمی نمیشود. با نویسندگی آنچه برای بقا لازم داری را به دشواری به دست خواهی آورد. برای چرخاندن زندگی با نویسندگی باید چیز فوقلادهی خلق کنی. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند استدادهای درخشانی. آرتور، به دقت دربارهاش فکر کن و انتخاب کن. ولی بعد از برگزیدن، مصمم و اصوار به من. عزم راسقت را از دست نده. در این صورت است که به سلامت به هدفت خواهی رسید هر آنچه میخواهی برگزین ولی با عشقی که در چشمانم حلقه زده التماست میکنم خودت را فریب نده با خودت جدی و صادق باش خوشبختی تو در زندگی مانند شادی من در روزهای دور گذشته به قمار گذاشته شده زیرا تنها تو و عادل میتوانی جایگزین جوانی گمشده من باشید نمی توانم ناراحتیت را تحمل کنم به خصوص اگر قرار باشد با وجود این اتاف پذیری فراوانی که دارم خودم را برای بدبختی تو سرزنش کنم آرتور عزیز می دانی که از ته دل دوستت دارم و می خواهم در همه حال یاورت باشم پاداش مرا به اعتماد به نفس خودت و با عمل به توصیه هم درباره به نتیجه رساندن انتخابت بعد از تصمیم گیری بده و مرا با نافرمانی و سرکشی نده. میدانی که خیر و لجوج نیستم من میدانم چطور با بحث و استددار راه باز کنم و هرگز چیزی از تو نخواهم خواست که نتوانم با دلیل و برهان از آن دفاع و حمایت کنم به امید دیدار آرتور عزیز نام رسان عجله دارد و انگشتانم درد گرفته است همه ی آنچه میفرستم و می را به ذهن بسپار و زود پاسخ بده مادرت یه شوپنهاور آرتور در گوهنسالی نوشت وقتی خواندن این نامه را به پایان بردم، عشق فراوانی ریختم. در پاسخ نامه، رهایی از دوره آموزشی را برگزید و یوهانا پاسخ داد اگر کس دیگری به جای تو بود و برخلاف عادت با چنین سرعتی تصمیم می گرفت، دل می باید از شتاب زدگی بترسم، ولی این رویداد در مورد تو به من اطمینان خاطر می دهد. آن را نشانه قدرت درونی ترین اشتیاقهایت میدانم که تو را به حرکت وامی دارد. وقت تلف نکرد. حامی تاجر و مدیر شبانه روزی آرتور را در جریان قرار داد و گفت که آرتور هامبورگ را ترک خواهد کرد. سفرش را تدارک دید و ترتیبی داد که در دبیرستانی در گوتا در پنجاه کیلومتری خانه مادرش در وایمار به تحصیل مشغول شود. زنجیرهای آرتور دیگر پاره شده بود. دیدن این که چطور انسان در زندگی ملموس و غیر انتظایی همیشه حیات دومی در عالم معنا دارد قابل توجه و چشمگیر است. در قلم روی جرفندیشی آرام، آنچه پیش از آن کاملا تسخیرش کرده بود و او را به ده تحت تاثیر قرار داده بود، اینجا سرد و بیروح، بیدرنگ و دور به نظر می آید. انسان در اینجا یک تماشاچی و مشاهدگر محض است. رادیو. فصل پانزده پم در هند وقتی از سرعت قطار بمبایی به ایگاتپوری کاسته شد تا در روستای گوچک بیستد صدای سنچهای آینی به گوش پم رسید و باعث شد به دقت از پنجره سیاه و کثیف قطار به بیرون نگاه کند یک پسر سیاه چشم ده یازده ساله با اشاره به پنجره او در حالی که یک تکه پارچه و سطح آب زرد رنگی را بالا گرفته بود به موازات قطار میدوید از دو هفته پیش که پم به هند رسیده بود فقط به نشانه نه سرتکان داده بود نه به راهنما های مناطق دیدنی واکسی ها آب نارنگی تازه لباس ساری کفش های تنیس نایکی و تعویض پول نه به گدایان و نه به دعوت های بیشمار جنسی که گاه به سراحت بیان می شد و گاه محتاطانه با چشمک بالا بردن ابروها لیسیدن لبها و حرکت زبان اندیشید؟ بلاخره یک نفر چیزی را که نیاز دارم به من پیشنهاد کرد سرش را به شدت به نشانه آری برای شیشه پاکان تکان داد و پسرک با لبخند دندان نمایی پاسخش را داد او که از تفقد و تماشاگری پم خوشحال بود شیشه را با بازارگرمی های نمایشی فراوان شست با آنکه پم پم دستمزد ای به او داده بود پسرک به او زون زده بود طوری که مجبور شد کنارش بزند بعد تکیه دادو صف رستاییان را که به دنبال کاهنی ملبس به شلوار پرچین قرمز روشن و شان زرد در مسیر خیابان قبارالود پیچ و تاب میخورد، تماشا کرد. مقصدشان میانه میدان شهر و پیکره بزرگ ایزدگانشا ساخته شده از خمیر کاغذ با بدنی چاق و چله شبیه به بودا و سر فیل بود. همه کاهن، مردانی با لباسهای سفید درخشان و زنانی با لباس زعفرانی و سبزابی هر یک پیکری کوچکی از گانشا در دست داشتند دختران جوان مشت مشت گل می و پسران نوجوان جفت جفت دو طرف چوبهایی را گرفته بودند که آتشدانهایی فلسی را نگه داشته بود و ابری از بخور از آنها بر همگی همراه با صدای به هم خوردن سنجها و گرش تبلها سرود می پم رو کرد به مردی که با پوستی به رنگ مصر رو به رویش نشسته بود و داشت چایش را مزمزه میکرد کرد و تنها مسافر همراه او در کوپه بود. مردی دلچسب و خوش‌سیما که پیراهن و شلوار گشاد سفید کتانی برتن بر تن داشت. و پرسید: ببخشید، ممکن است بگویید اینها چه می‌خوانند؟ با شنیدن صدای پم، چای به گلوی مرد پرید و به شدت به سرفه افتاد. سوال پم خوشحالش کرد چون از وقتی قطار از بمبعی راه افتاده بود بیهوده به دنبال فرصتی بود تا سر صحبت را با زن زیبایی که روبرویش نشسته بود باز کند بعد از صرفه شدید و صاف کردن صدایش پاسخ داد مذرت میخوام خانم فیزیولوژی همیشه به فرمان آدم نیست مردم امروز اینجا و در سراسر هند میخوانند گاناپاتی گرامی خدای مورایا سال بعد هم دوباره بیا گاناپاتی بله میدانم خیلی گیج کنند است شاید شما او را با نام رایجش گانشا بشناسید او نام های دیگری هم دارد و ماجرای این رژه چیست آغاز عید ده روزه گانشا است شاید بختیارتان باشد و هفته دیگر در بمبعی باشید تا روز آخر عید شاهد راه رفتن همه مردم شهر در اقیانوس و فرو بردن پیکره های گانشا در واجی که به ساحل می رسند باشید اوه و این چیه؟ ماه یا خورشید پم به چهار کودکی اشاره کرد که کره بزرگ کاغذی زرد رنگی را در دست داشتند به جای ظهخ کرده بود سوالات را قنیمت می و امیدوار بود توقف قطار طولانی باشد و این گفتگو همینجور ادامه یابد. از اینجور زنان در فیلم های زیاد دیده بود. ولی تا پیش از آن بخت آن را نیافته بود که با یکی از آنها هم کلام شود. این زن تخیلش را به کار انداخته بود. انگار از حکاکی باستانی بیرون خرامیده بود. اندیشید و این برخورد به کجا می ختم شود؟ ممکن است یکی از آن وقایع زیر و کننده زندگی باشد که مدتها در جستجویش بود؟ او آزاد بود، کارخانه پوشاکش او را با میارهای هند ثروتمند کرده بود نامزد نوجوانش دو سال پیش از سل مرده بود و تا زمانی که والدینش اروس جدیدی را برایش انتخاب کنند مانعی بر سر راهش وجود نداشت آه این ماه است که بچه ها به دست گرفتند انرا را در گرامی داشته یک افسانه ی کوهن حمل می کنند. اول باید بدانید که خداگانش به اشتهای فراوانش شهرت دارد به شکم بزرگش دقت کنید یک بار به زیافتی دعوت شده و شکمش را از نوعی شیرینی بعد از غذا به اسم لادوس هم باشته. تا حالا لادوس خورده اید؟ پم سرش را به علامت نفت کنداد و ترسید مرد یکی از آنها را از کیف دستیش در یکی از دوستان نزدیکش با خوردن چای در یک چایخانه در هند یرقان گرفته بود. به همین دلیل، هوشدار پزشکش را خیلی جدی گرفته بود که چیزی جز غذای هتل‌های چهار ستاره نخورد. وقتی دور از هتل بود، تنها به هایی بسنده می‌کرد که قابل پوست کندن باشند. عمدتاً نارنگی، تخم مرغ آب پز سفت شده و بادام زمینی. وجای ادامه داد، مادرم لادوس‌های نارگیلی بادامی ای می‌پزد. در اصلین شرینی ها گلونه های سخ شده آردند که در شهر هلدار فرو برده شده هند. به نظر سقیل و بیلطف میآید ولی باور کنید مزهش چیزی بیش از جمع مزه محتویاتش است. ولی برگردیم به خداگانش که آنقدر خورده بود که نمی‌توانست درست بایستد تعادلش را از دست داد افتاد شکمش ترکید و همه لادوس‌ها بیرون ریخت. همه اینها در شب اتفاق افتاد و فقط یک شاهد داشت که همان ماه بود و این اتفاق به نظرش خنده دار آمد. گانشای خشمگین ماه را نفرین کرد و او را از جهان تبعید کرد. ولی همه دنیا برای غیبت ماه گریه و زاری کردند. پس خدایان گرد هم آمدند و از ایزت شیوا پدر گانشا خواستند او را به گذشت ترغیب کند. ماه توبه کار هم از رفتار نادرستش عذرخواهی کرد. بلاخره گانشان افرینش را تعدید کرد و اعلام کرد ماه باید فقط یک روز در ماه دیده شود باقی روزها نیمه آشکار باشد و فقط یک روز در ماه اجازه دارد همه ی حلقه نورش را آشکار کند وجای بعد از سکوتی کوتاه اضافه کرد و حالا می دانید چرا ماه در عیدهای خدا گانشان نقشی ایفا می کند ممنون از توضیحات تو. اسم من وجای است، و جای پانده و من پم هستم چه داستان قشنگی و چه خدای عجیب خنده داری. سر فیل و تن بودا. ولی انگار روستاییان اسطوره هایشان را خیلی جدی میگیرند. آنقدر که انگار واقعیت. و جای صحبت پم را به آرامی قطع کرد و در حالی که آویز گردنی بزرگی را که تصویر بران کنده شده بود از پیراهنش بیرون میکشید گفت: نمادهای موجود در پیکرنگاری خدای جالب است. لطفا دقت کنید که هر وجه تصویر گانشا معنای جدی و مهمی در خود دارد و نوعی رهنمود است. سر بزرگ فیل را در نظر بگیرید به ما میگوید بزرگ فکر کنید و گوشهای بزرگ بیشتر گوش کنید چشمان کوچک دقت و تمرکز را به ذهن می آورد و دهان کوچک کم حرف زدن را و من رهنمود گانشا را فراموش نمی کنم حتی در این لحظه که با شما حرف میزنم توصیهاش رو در خاطر دارم و به خود گوشزد کنم که زیاد حرف نزنم. شما باید کمکم کنید و اگر دارم بیش از آنچه شما میخواهید بدانید حرف میزنم به من بگویید. نه، به هیچ وجه. نظراتتان درباره نمادهای های برایم بسیار جالب است. موارد فراوان دیگری هم هست بیایید از نزدیک ببینید؟ ما هندی مردمان بسیار جدی هستیم. دستش را در کیف چرمیی کرد که بر اش بود و یک زره بیرون کشید. پم زره را گرفت و خمش را تا گردم بند وجای را به دقت نگاه کند. رایحه هل و دارچین لباس کتان تازه اتو شده او را فرو داد. چطور ممکن بود که این مرد در کوپه بسته و پرگرد و خاک قطار چنین بوی خوش و پر تراوتی بدهد؟ گفت فقط یک آش دارد. یعنی خوب را حفظ کنید بد را دور بیاندازید. و آن چیز که در دست گرفته تبر برای بریدن همه تعلقات و دلبستگی ها شبیه تعالیم بوداست بله و گانشا چیزی هم در دست دیگرش دارد خوب دیده نمی شود. یک ریسمان یک تناب که شما را به والاترین اهدافتان نزدیک تر کند به جای گفت مرکوب من دوباره زنده شد به مرکوب گانشاد دقت کنید آنجا زیر پایش پم نزدیکتر شد تا از پشت زربین بهتر ببیند و عطر وجای را محتاطانه فرو داد اوه بله موش آن را در همه پیکره‌ها و نقاشه های گانشا دیدم هیچوقت نفهمیدم چرا یک موش این از همه ویژگی هایش جالبتر است موش اشتیاق است فقط در صورتی میتوانید از آن سواری بگیرید که اختیارش در دست شما باشد در غیر این صورت، ویرانی به بار می آورد پم ساکت شد همانطور که قطار با سر و صدای زیاد، درختانی لاغر و تنک، گاه چند معبد گاومیش در برکه های گلالود و مزاره ای را پشت سر می گذاشت که خاک سرخشان بعد از هزاران سال کار بی رمق و فرسوده شده بود، پم جای را از نظر گذراند و موجی از قدردانی و سپاس سراپایش را فرا گرفت این مرد چقدر غیر خود نمایانه و ملایم او را از کوتاه نظری به بود و نگذاشته بود به صحبتهای ناراحت کنند و بی رفتش درباره آینه او ادامه دهد. تا حالا کدام مرد با چنین ظافت و نزاکتی با او برخورد کرده بود. ولی نه، به خودش یادآوری کرد که حق مردان نازنین دیگر را زیر پا نگذارد. به گروهش فکر کرد. بهتونی که حاضر بود هر کاری برای پم بکند؟ و همینطور سوارت که می گاهی بزرگوار باشد و جولیوسی انگار عشقش بی پایان بود ولی ظرافت وجای استثنایی بود خارقلاده بود و وجای او هم در خواب و خیال فرو رفته بود و گفتگویش با پم را مرور می کرد به شکل قیرادی هیجان زده بود قلبش تند می و می خود را آرام کند کیف چرمیش را گوشود، پاکت سیگار چروک خورده ای را بیرون کشید، نه برای سیگار کشیدن، پاکت خالی بود، و به علاوه شنیده بود آمریکایی‌ها در زمینی سیگار کشیدن چقدر پیشبینی ناپذیرند. فقط میخواست روی پاکت سفید و آبی را بخواند که تصویر مردی با کلاه سیلندر برام بود و نام تجاری یعنی پسینگ شو با حروف سیاه درشت بران نوشته شده بود، یکی از نخستین معلمان مذهبیش توجه او را به پسینگ شو جلب کرده بود که به معنای نمایش گذراست و نام تجاری سیگاری بود که پدرش می کشید و از او خواسته بود مراقبه را با تفکر در این باره آغاز کند که همه زندگی یک نمایش گذراست رودخانیی که همه چیز، همه تجربیات، همه اشتیاق‌ها را با خود می برد و تنها توجه مستقیم او را بر جای میگذارد و جایی بر تصویر ای مراقبه کرد و به کلمات بی صدای جاری در ذهنش آنیتیا به معنای گذرا گوش فراداد به خود یادآوری کرد همه چیز در گذر است همه زندگی و همه تجربیات مثل منظره پنجره قطار در حال عبور میگذرد و بازگشتی در کارش نیست چشمانش را بست به تنفس عمیق پرداخت و سرش را به پشت صندلیش تکیه داد همانطور که به بندرگاه مطلوب آرامش پای گذاشت نبزش آرام گرفت. هم که وجای را محتاطانه زیر نظر داشت پاکت سیگار را که به زمین افتاده بود برداشت رویش را خواند و گفت: پسسینگ شو چه اسم غیر معمولی برای سیگار است وجای آهسته چشمانش را گشود و گفت همانطور که گفتم ما ها خیلی جدی هستیم. حتی پاکت سیگارمان همهاوی پیام هایی برای هدایت زندگی است، زندگی یک نمایش گذراست. است. هر وقت گرفتار آشوبی درونی می شوم، بر آن مراقبه می کنم. یعنی همین کاری که یک دقیقه پیش کردید، امیدوارم من باعث ناراحتیتان نشده باشم. وجای سرش را به نرمی تکان داد و لبخندی زد. یک بار معلمم به من گفت کسی نمی تواند دیگری را ناراحت کند. این تنها خود فرد است که قادر است آرامش خود را برهم زند. مکسی کرد و متوجه شد که لبریز از اشتیاق است. چنان مشتاق توجه همسفرش بود که تمرین مراقبهش به کنجکاوی محض تبدیل شده بود. همه برای دریافت یک لبخند از این زن دوست داشتنی که فقط یک شبه بود. بخشی از نمایش گذرا که خیلی زود از زندگیش بیرون میرفت و در عدم ناپدید میشد. و با اینکه می‌دانید های بعدی او را از راهش دورتر خواهند کرد، شتاب زده به صحبتش ادامه داد. چیزی هست که دلم می بگویم، این ملاقات و این گفتگو مدت ها برایم گرامی خواهد بود، کمی بعد باید از این قطار پیاده شوم و به اشرام بروم، باید ده روز آینده را در سکوت سر کنم و برای کلماتی که اینجا رد و بدل کرده ایم و لحظاتی که در آن شریک بوده ایم بینهایت سپاس گذارم. به یاد فیلم های آمریکایی افتادم که در آنها مرد محکوم به اعدام در زندان اجازه دارد هر آنچه را که میخواهد به عنوان آخرین غذا سفارش بدهد. می توانم بگویم که آرزوهایم برای آخرین گفتگو کاملا برآورده شده است. پم فقط سری تکان داد. عجیب بود که هیچ واجه‌ای به ذهنش نمی رسید و نمی دانست تاروف وجای را چطور پاسخ دهد. ده روز در یک اشرام. منظورتان ایگاتپوری است؟ من هم راهی خلوتگاهی در آنجا هستم. پس ما یک مقصد و یک هدف داریم. آموختن ویپاسانا از مرشد مشهور. و چیزی هم نمانده. ایستگاه بعدی است. گفتید ده روز سکوت؟ بله، او همیشه بر سکوت عظیم تاکید دارد. به جز گفتگوهای ضروری با کارکنان، شاگردان نباید کلمه بر زبان آورند. تجربه مراقبه دارید؟ پم سری به نشانه نفتکانت من یه استاد دانشگاه هستم. ادبیات انگلیسی تدریس می و سال گذشته یکی از دانشجویانم تجربه شفا بخش و شدهگرون کننده در ایگات پوری داشت. این دانشجو در سر وسامان دادن به خلوتگاه های ویپاسانا در ایالات متحده خیلی فعالیت کرد و در حال حاضر مشغول طراحیه یک تور آمریکایی برای گونکاست. دانشجوی شما امیدوار بوده بتواند هدیه به معلمش پیشکش کند. او خواسته شما دگرگونی را تجربه کنید؟ خب تقریبا اینطور نبود که او حس کند من نیاز دارم چیزی را در خودم تغییر بدهم بیشتر به این دلیل بود که او آنقدر بهره برده بود که دلش میخواست من و دیگران هم همین تجربه را پشت سر بگذرانیم. البته سوالم را درست بیان نکردم منظورم اصلاً این نبود که شما نیازی به دگرگونی دارید اشاره من به شور و اشتیاق دانشجویتان بود ولی آیا شما را برای این خلوتگاه آماده کرده است آشکارا نه، خودش کاملا اتفاقی به این خلوتگاه برخورده و گفت بهتر از من هم با ذهنی کاملا باز به آن وارد شوم سرتان را طوری تکان می دهید که انگار مخالفید آه یادتان باشد، وقتی هندی ها سرشان را به این طرف و آن طرف تکان می دهند، یعنی موافقند و وقتی سرشان را بالا و پایین می‌برند یعنی مخالفند درست بر عادت آمریکایی ها اوه خدای من فکر کنم ناخداگا متوجه این مطلب شده بودم چون ارتباط من با مردم اینجا لنگ میزند لابد کسانی را که با من صحبت کردند حسابی گیج کرده نه نه بیشتر هندیها ها که با غربی ها سر و کار دارند با این قضیه کنار آمدند. درباره توصیه دانشجوی تان مطمئن نیستم موافق باشم که هیچ نوع آمادگی لازم ندارید. بگذارید اشاره کنم که اینجا خلوتگاه مبتدی ها نیست. سکوت عظیم مراقبه از ساعت چهار صبح خواب کم یک وعد غذا در روز کار سختی است باید قوی باشید قطار قطع شد دریگات پوری هستیم وجای برخواست وسایلش را جمع کرد و کیف دستی پم را از تاخچه بالای سرشان پایین آورد قطار ایستاد: و وجای برای پیاده شدن آماده شد و گفت تجربه آغاز می شود کلمات وجای آرامش چندانی به همراه نیاورد و پم دلواپستر شد. یعنی ما نمیتوانیم در طول این خلوت با هم حرف بزنیم؟ هیچ نوع ارتباطی. نه نوشتنی، نه به زبان اشاره. ایمیل وجای لبخند نزد. سکوت عظیم راه صحیح بهره بردن از ویپاسان است. انگار عوض شده بود. پم حس کرده از حالا در حال دور شدن است. گفت دست کم حضور شما به من آرامش میدهد. تصور اینکه هر دو با هم آنجا کمتر ناراحت کننده است. وجای جای بیان که نگاهش کند گفت: تنها با هم. عبارت به جا و مناسبی است. پم گفت: شاید بعد از خلوت دوباره در این قطار همدیگر را ببینیم. نباید به این مسئله فکر کنیم. گونگا به ما یاد خواهد داد که باید تنها در زمان حال زندگی کنیم. دیروز و فردا وجود ندارند. یادگارهای گذشته و آرزوهای آینده فقط ناراحتی و تشویش به همراه دارند. راه رسیدن به تعادل از مشاهده زمان حال می‌گذرد. باید اجازه دهیم بدون پریشانی در رودخانه آگاهیمان قوتور شود و پایین رود. به جای بیان که نگاهی به پشت سر بیندازد، بند کیفش را شانه انداخت، در کوپه را باز کرد و خارج شد. فقط یک مرد آقل که به وسیله تکانی جنسی گیت شده باشد میتواند رابطه با موجودی ریز نقش، با شانه های لگن پهن و پاهای کوتاه را یک رابطه دلپسند و بین بنامد. آرتور شوپنهاور درباره زنان لفظی های بیوقفت و زاریت برای دنیای خرفت و انسان بدبخت شبهای بد و رویای ناخوشایندی برای من به ارمقان میآورد آورد تک تک لحظات ناخوشایند زندگی‌ام را مدیون تو هستم نامه از یوهانا مادر آرتور به آرتور شپنهابر فصل شانسته مهمترین زن زندگی شپنهاور. مهمترین زن در زندگی آرتور تا آن زمان مادرش یوهانا بود که با او رابطه ای عذاب و دوگانه داشت و در نهایت هم فرو باشید نامه های که آرتور را از ادامه دوره آموزشیش معاف کرد حاوی احساسات مادرانی تحسین برانگیزی بود دلواپسیش، عشقش و امیدهایش برای او با این حال همه اینها مستلزم یک شرط بود اینکه آرتور فاصله مناسبی را با او حفظ کند به همین دلیل در نامی آزادی توصیه کرد، آرتور از هامبورگ به گوتا نقل مکان کند و نه به خانه او در وایمار که پنجاه کیلومتر دورتر بود. تبوتا به احساسات پشور میانی این دو کمی پس از اعلام آزادی آرتور فرو نشست، زیرا مدت اقامت آرتور در مدرسه مقدماتی گوتا خیلی کوتاه بود، پس از گذشت تنها شش ماه، آرتور 19 ساله برای نوشتن شعری رندانه و به طرز بیرحمانه ریش درباره یکی از معلمان اخراج شد و با التماس از مادر خواست اجازه دهد با او زندگی کند و تحصیلاتش را در وایمار ادامه دهد. این برای یوهانا خوشایند نبود. در واقع فکر زندگی کردن با آرتور هم او را دیوانه می کرد. آرتور در طول شش ماه اقامتش در گوتا چند بار به او سر زده بود و حاصل هر ملاقات رنجش و ناخوشنودی بیشتر یوهانا بود. نامه هایی که پس از اخراج آرتور به او نوشت زننده ترین و ناخوشایند ترین نامه هایی هستند که مادری تا به پسرش نوشته است. با خلق و خویت آشنا هستم. آزاردهنده و تحمل هستی و زندگی با تو برایم سخت است. همه ویژگی‌های ویژگی های خوب از زیر سایی تیز بیش از اندازت قرار گرفته و به درد هیچ کس نمیخورد. تو خورد. و نقص را در همه جا می‌بینی، جز در خودت. برای همین هم افراد دروبرت را میرنجانی. رنجانی. هیچ کس دلش نمی با چنین شیوه زورکی و خشنی پیشرفت کند یا چیزی بیاموزد. آن هم به دست فرد پست و ناچیزی مثل تو، هیچ کس نمیتواند تحمل کند به وسیله فردی که این همه ضعف شخصی از خود نشان میدهد مورد انتقاد قرار بگیرد. آنم بشیوی تحقیر کننده تو که با لحنی پندامیز جار میزنی چنان و چنان بیان که کمترین احتمال خطا برای خودت در نظر بگیری. اگر این ویژگی هایت کمرنگ تر بود فقط مزحک بودی ولی با این وضعیت مزاحم ترین و آزادنده ترینی. تو هم می توانستی مثل هزاران دانش آموز دیگر در گوتا زندگی و تحصیل کنی ولی این را نمیخواستی و برای همین هم اخراج شدی. تو میخواهی مثل یک مجله ادبی زنده زندگی کنی که چیزی نفرت انگیز و کسل کننده است چون نمی شود صفحات این مجله ادبی را سرسری خواند یا این آشغال را پشت اجاق پرتاب کرد یعنی اون کاری که می شود با مجله چاپ شده انجام داد. بلاخره یوهانا این واقعیت را پذیرفت که نمیتواند تا زمانی که آرتور خود را برای دانشگاه آماده می کند از پذیرش او در وایمار سرباز زند ولی دوباره برایش نوشت تا اگر آرتور نکاتی را نفهمیده متوجهش کند و نگرانی هایش را با جزئیات بیشتر بیان کرد فکر می کنمعاقلانه ترین کار این است که خواسته و احساسم درباره موارد مختلف را سراحتا برایت بگویم تا از همان ابتدا یکدیگر را درکن مطمئنم در اینکه که شیفته تو هستم تردیدی نداری قبلا این مسئله را به تو ثابت کردم و تا وقتی زنده ام به این اثبات ادامه خواهم داد برای اینکه خوشحال باشم ضروری ضروریست بدانم که تو هم خوشحالی ولی لازم نیست شاهد این خوشحالی باشم همیشه گفتم که زندگی کردن با تو خیلی سخت است هرچه بیشتر می این احساسم هم قویتر می شود این را از تو پنهان نمی کنم وقتی همینی ترجیح می دهم هر بهایی که لازم است بپردازم ولی نزدیک تو نباشم. آنچه مرا پس میراند نه در دل تو و هستی درونی تو بلکه در وجه بیرونی توست، در عقاید غضاوت ها و رفتار توست. در یک کلام در دنیای بیرون چیزی نیست که بر سرش با هم توافق داشته باشیم. ببینار تو رو عزیزم. هر بار که حتی برای چند روز به دیدار من آمده ای، برای هیچ و پوچ سحنه خشنی از تو دیدم و فقط وقتی رفته ای توانستم نفسی به راحتی بکشم چون حضورت، قرولوندهایت درباره مسائل بدیهی، چهره عبوست، بدخلقیهایت، نظرات عجیب و قریبی که بر زبان می آوری، همه و همه افسرده و ناراحتم می بیان که بتوانم کمکی در این زمینه ها به تو بکنم شناسی رفتار آشکار و روشن است. او به لطف خدا از ازدواجی که میترسید همه عمر در آن محبوس باشد گریخته بود. مست از آزادی سرشار از این فکر بود که دیگر هرگز نمیخواهد در برابر هیچ کس پاسخگو باشد. زندگی خودش را خواهد کرد. هر هرکس را که دلش بخواهد به دیدار خواهد پذیرفت. ولی هرگز دوباره ازدواج نخواهد کرد. و استعدادهای قابل ملاحظه خیش را کشف خواهد دورنمای صرف نظر کردن از آزادی به خاطر آرتور برایش قابل تحمل نبود. نه فقط به این دلیل که آرتور به نوبه خود فردی بسیار دشوار و سلطجو بود، بلکه نیز به این دلیل که او پسر زندانبان سابقش بود. تجسم زنده بسیاری از ویژگی های ناخوشایند هاینریش. و مسئله پول هم مطرح بود. این موضوع نخستین بار زمانی خود را نشان داد که آرتور در 19 سالگی مادرش را به ولخرجی و اسراف زیاد متهم کرد که میتواند میراسی را که قرار بود در 21 سالگی به او برسد به خطر بیاندازد. اندازد. یوهانو عصبانی شد و گفت همه میدونند او در سالن فقط با ساندویچ از میهمان ها پذیرایی میکند و بعد آرتور را به شدت مورد انتقاد قرار داد که با رفتن به رستوران های گران قیمت و کلاس های اسب بسیار فراتر از میزان داراییش خرج میکنند در نهایت این بحث بحثهای مالی بالا گرفت و به میزان تحمل ناپذیری رسید احساسات یوهانا نسبت به آرتور و نسبت به مادرش در رمانهایش نمود یافتند قهرمان زن داستانهای یوهانا شپنهاور همیشه زنی بود که عشق راستینش را به شکل مصیبت از دست داده بود و به ازدواجی منطقی از لحاظ مالی بدون عشق و گاه خشن رضایت داده بود ولی از روی نافرمانی و برای اثبات خیش حاضر نمیشد بچه دار شود. آرتور احساساتش را با هیچ کس در میان نمی‌گذاشت و مادرش بعدها همه نامه های او را از بین برد. با وجود این، بعضی تمایلاتش بدیهی و آشکارند. پیوند میان آرتور و مادرش شدید بود و درد فروپاشی و زوال این پیوند آرتور را همه عمر گرفتار کرد. یوهانا مادری خارق‌العاده بود، پرنشاد، ساری، زیبا، آزاداندیش، رو و کتابخوان. تردیدی نیست که او و آرتور درباره قوت‌ه‌وری آرتور در ادبیات باستانی و مدرن گفتگوهای زیادی داشتند. در واقع محتمل است که انتخاب مهم آرتور در پانزده سالگی برای رفتن به سفر به جای آمادگی برای دانشگاه به دلیل اشتیاقش برای ماندن در کنار مادر بوده باشد. فقط پس از مرگ پدر بود که حال و هوای رابطه مادر و پسر عوض شد. امید آرتور برای گرفتن جای پدر در دل مادر با تصمیم یوهانا به رها کردن او در هامبورگ و رفتن به وایمار در هم شکست. وقتی مادر او را از قیدی که به پدر متوفایش داده بود آزاد کرد، این امید دوباره زنده شد. ولی وقتی یوهانا او را به رغم امکانات آموزشی بسیار بهتر در وایمار به گوتا فرستاد، این امید دوباره نابود شد. اگر علت رفتارهایش آرزوی پیوستن دوباره به مادر بود، بیمیلی یوهانا به پذیرایی از او در خانه جدید و نیز حضور افراد دیگر در زندگی او باید معیوس و دل سردش کرده باشد. عذاب وجدان آرتور برای خودکشی پدرش هم در شادی رهاییش و هم در این ترس ریشه داشت که شاید بی‌علاقگی او به دنیای تجارت مرگ پدر را تسریع کرده بود. طولی نکشید که این به دفاع بیامان از خوشنامی پدر و ابجویی جویی بدخواهانه و ناپسند از رفتار مادر نسبت به پدرش تغییر شکل داد سالها بعد نوشت زنان را می شنستن. آنها ازدواج را فقط سنتی متداول برای تأمین زندگیشان می دانند. وقتی پدرم به شدت بیمار و ضعیف شد اگر نیک خواهی پرمهر یک خدمتکار با وفا نبود که همه مراقبت‌های لازم را از او بکند به حال خود رها شده بود. در حالی که او تنها در بستر افتاده بود مادرم میهمانی میداد وقتی به شکل دردآوری رنج میکشید مادرم در حال خوشگذرانی بود عشق زنان چنین است وقتی آرتور برای تعلیم دیدن نزد یک معلم خصوصی به منظور ورود به دانشگاه به وایمار رسید اجازه پیدا نکرد با مادر زندگی کند و در خانه‌ای اجاره‌ای مستقر شد که مادر برایش پیدا کرده بود نامی از مادر در اونجا انتظارش را می کشید که در آن با شفافیتی بیرحمانه قوانین و محدودیت های رابطه را گوش زد می کرد. از حالا موزه ای را که دلم میخواهد در برابر تو بگیرم مشخص می کنم. تو در خانه خودت زندگی می و در خانه من می من محسوب می شوی. و در هیچ اکی از ترتیبات و مسائل آن خانه دخالت نمی کنی. هر روز ساعت یک می‌آیی و تا ساعت سه بعد از این ساعت نباید در آنجا ببینمت به جز در روزهای سالن که اگر دوست داشته باشی میتوانی حضور داشته باشی. و اصر این دو روز خوراکی را که برایت فراهم شده در خانه من میخوری و از بحث های ک ولی که مرا عصبانی می خودداری می کنی. در ساعت بعد از ظهر می توانی هرچرا که باید درارت بدانم برایم بگویی و باقی ساعت خودت باید مراقب خودت باشی. نمیتوانم به خاطر تو از تفریح و سرگرمی های خودم بگذرم. همین. حال دیگر از خواسته های من آگاهی و امیدوارم پاسخ محبت و عشق مادرانه مرا با مخالفت ندهی. آرتور در طول دو سال اقامتش در وایمار این مقررات را رایت کرد و در گرد همویه های شبانگاهی مادرش یک مشاهدگر محض باقی ماند. طوری که حتی یک بار هم با گوته بزرگ هم کلام نشد. تخصصش بر زبان یونانی، لاتین، ادبیات کلاسیک و فلسفه به طرز اجوابوری بیشتر شد و در سن 21 سالگی در دانشگاه پذیرفته شد. همزمان میراثش را دریافت کرد که درآمدی کافی ولی متوسط برای باقی عمرش فراهم می‌کرد. همانطور که پدرش پیش‌بینی کرده بود، او نیاز فراوانی به این میراث داشت. آرتور نتوانست درآمدی از حرفه استادیش کسب کند. با گذشت زمان، آرتور پدرش را فرشته و مادرش را شیطان می دید. داشت که حسادت و شکاکیت پدر نسبت به وفاداری مادرش بهجا بوده و نگران بود نکند مادر حرمت خاطره پدرش را نگه ندارد. او هم مانند پدرش می خواست یوهانا زندگی منزوی و آرامی داشته باشد. آرتور به کسانی که خاستگار مادر می پنداشت به شدت حمله می کرد و قضاوت تحقیرآمیز در داشت. آنها را موجوداتی با تولید انبوه می که سزاوار نشستن به جای پدرش نیستند. آرتور در دانشگاه گوتینگن و برلین تحسین کرد و سپس دکترای فلسفه را از دانشگاه یانا گرفت. مدت کوتاهی در برلین مان ولی خیلی زود به دلیل جنگ قریب با ناپلئون از این شهر گریخت و به وایمار برگشت تا با مادرش زندگی کند. جنگ های خانگی خیلی زود از سر گرفته شد. ناتان تنها مادر را برای استفاده نادرست از پولی که برای نگهداری مادر بزرگش اختصاص داده بود، بازخواست کرد، بلکه او را به داشتن روابط ناشایست با مولر، یکی از دوستان صمیمی یوهانا متهم کرد. آرتور در دشمنی با مولر چنان خشونتی نشان می‌داد که یوهانا مجبور شد فقط مواقعی که آرتور خانه نبود، دوستش را ببیند. در همین دوره بود که وقتی آرتور نسخه ای از مدرک دکترایش با عنوان در باب ریشه چهارگانه اصل سبب کافی را به مادرش داد، گفتگویی میان آنها در گرفت که بار حال عقل شده است. یوهانا در حالی که به عنوان صفحه نگاه می کرد گفت: ریشه چهارگانه؟ نکند از آن چیزهایی است که به درد عطارها میخورد؟ آرتور وقتی دیگر حتی یک نسخه از نوشته های تو پیدا نشود، این رساله همچنان خانده خواهد شد یوانا، بله، شک ندارم، آن موقع همه ی نسخه های کتاب تو هنوز در مغازه ها خاک می خورد. آرتور در مورد انوین کتاب هایش ناپذیر بود و هر گونه ملاحظه خریدار پسندی را رد می کرد. در باب ریشه چهارگانه اصل سبب کافی را میشد با عنوان مناسبتری مثل نظریه در باب بیانگری عرضه کرد. این نوشته بعد از دست کم دو سال هنوز چاپ می شود. کمتر رساله است که به چنین امتیازی دست یافته باشد. جربه های شدید درباره پول بر روابط یهانا با مردان ادامه پیدا کرد تا جایی که صبر یوهان لبریز شد. اعلام کرد هرگز برای آرتور دوستیش را با مدرر یا هیچ کس دیگری بر هم به او دستور داد از آن خانه برود و از مولر دعوت کرد به اتاق خالی شده او نقل مکان کند و این نامی سرنوستاز را به آرتور نوشت. در دیروز بعد از رفتار نادرست با مادرت با سر و صدا به هم کوبیدی، حالا دیگر برای همیشه میان من و تو بسته شده است. من به یه ایلاق می روم و تا زمانی که از رفتنت مطمئن نشوم باز نمی گردم. تو نمی دانی قلب یک مادر یعنی چه. هرچه پرمهرتر عشق ببرزد، هر ضربه دستی که زمانی به آن عشق میبرزیده برایش دردناکتر خواهد بود تو خودت از من دل دلکندی، بیعتمادیت، عبجوی از زندگیم و انتخاب دوستانم، رفتار سرسریت با من، تغییری که به جنسیتم روامی میداری، هرس و تمهد، اینها و خیلی چیزهای دیگر تو را بدخواه من جلوه میدهد اگر من مرده بودم و تو مجبور بودی با پدرت کنار بیایی جرأت می کردی برایش معلم بازی در بیاوری یا سعی کنی زندگی و دوستانش را کنترل کنی مگر من از او کمترم مگر او بیش از من برای تو قدم برداشته مگر بیشتر از من تو رو دوست داشته وظیفم در قبال تو به پایان رسیده به راه خودت برو من دیگر با تو کاری ندارم نشانیت را برایم بگذار ولی برایم نامه ننویس. از این به بعد دیگر نه نامه ای از تو خواهم خوان و نه پاسخی به تو خواهم داد. این پایان را است تو بیش از اندازه آزارم دادی. زندگی کن و تا می توانی شاد باش. و این پایان رابطه بود. یوهانا بیست و پنج سال دیگر زندگی کرد. ولی مادر و پسر دیگر هرگز دیداری نداشتند. شوپنهاور در ساد خوردگی با یاداوری خاطرات والدنش نوشت اغلب مردان میپذیرند چهرهی زیبا اقبایشان کند. طبیعت زنان رو می دارد همه مهارتشان را یک جا به نمایش بگذارند و و هیجانی فرینند. ولی طبیعت زشتی های زنان را پنهان می کند. هزینه های بیپایان، توجه به کودکان، نافرمانی، یکدندگی، پیری و زشتی بعد از چند سال، فریبکاری، بیابروی، حوصبازی، تعصب نیروهای جهنمی و خباست برای همین است که ازدواج را وامی می‌دانم که در جوانی می‌گیرند و در سالخوردگی پس می‌دهند